این را گفت و نفسی تازه کرد و آمد به طرف اسمایل که ایستاده بود و این صحنه ها را تماشا می کرد. بفرمایید دفتر چای میل کنیم. تشکر صبحانه خوردم. اوضاع احوال ما رو میبینین؟ به جایی چند نفر کار کن اما سر ما حقوق یه معلم رو بگیر. یعنی کسی نیست کمکتون کنه؟ نه به اون صورت. پدر یکی از بچه ها میاد بخاری رو روشن میکنه و نظافتی میکنه و میره. همین. اسماعیل لبخند زد و گفت: در عوض ارزش کار شما زیاده، تربیت انسان. معلم سرفه کرد و پرسید. شما ترکین بله. پس چرا فارسی صحبت میکنین؟ دیدم شما با بچه ها فارسی صحبت میکنیم برای همین. معلم سینه را صاف کرد و گفت. ما مجبوریم با بچه ها فارسی صحبت کنیم. اما شما که ترکی چرا با زبون مادری حرف نمیزنی؟ اسمایل با لبخند شانه بالا انداخت. برای من فرقی نمیکنه ترکی، فارسی هرچی پیش بیاد حرف میزنم. با بعضی از دوستای ترکم فارسی نمیتونم حرف بزنم با بعضی هاشون ترکی نمیتونم، حتما باید فارسی حرف بزنم. مگه میشه ترک به ترک بر فارسی حرف بزنه. مگه فارسا ترکی حرف میزنن که ما فارسی حرف بزنیم. مشکل ما ترکا این از آناتولی تا آسیای مرکزی و چین پراکنده ایم اما از حال هم بیخبریم. نمیدونیم چه جمعیتی هستیم. تو چه جغرافیای پهناوری زندگی میکنیم؟ آره خب ترک ها زیادن تو همین ایران خودمون هم کم نیستن چه فایده؟ نمیتونیم به زبون خودمون بنویسیم نمیتونیم حرف بزنیم کاش یه هم تو ایران پیدا میشد و رو عوض میکرد به ما شخصیت میداد که به ترک بودنمون افتخار کنیم بعد مکس کرد و پرسید میبخشین اسم شریفتون؟ اسمایل. منم شما اهل اسمای اگه کتاب گیرم بیاد بدم نمیاد. میخونم. خب من سفارش میکنم کتاب ددق ورگورت رو حتما بخون. اونجا نوشته تیره و تبار ما ترکا به گرگ میرسه. گرگ، زرنگ، سهمگین و آزاد. گرگ؟ بله. یه گرگ خاکستری با همون هوش و ذکاوت و درندگی. حتما بخون. اگه بخوای من برات میارم. اون وقت ببین ما چه نژاد سرکشی هستیم. سرمونو پیش دیگرون خم نمی کنیم. به تاریخ خودمون، به خون خودمون، به سرزمینای وسیع خودمون، به زبون خودمون افتخار می کنیم. آتا ترک همه اینا رو به ترکای بالکان داده، زبونشونو خالص کرد، فرهنگشونو خالص کرد، خوش به حالشون جدن. اجدر از پشت دیوار مدرسه پیچید و دوان دوان به طرف آنها آمد و گفت، آقا اجازه ما کارمونی کردیم. بایرام که روی دیوار نشسته بود و پاهایش را از دو طرف آویخته بود آنها را تکان میداد. از همونجا داد زد آقا اجازه آقا ما دیدیم اجدار خودش رو با یه دونه سنگم پاک نکرد همینطور بلند شد اجدر انگشته اشاره اش را بالا برد و پیش از اجازه معلم گفت آقا این دروغ میگه ما خودمونو تمیز کردیم بایرام از روی دیوار داد زد آقا اینجا اصلا سنگ پیدا نمیشه همش خاک و کلوخه معلم که کلاف شده بود حرف هر دو را قطع کرد و رو به بایرام گفت حالا هرچی به تو چه رفتی بالا خبرنگاری کنی سنگ کولو، خاک شلیته چه فرقی میکنه؟ حرف که درآوردن چند قدم به طرف دیوار رفت بایرام دست پاچه شد پشتش را به طرف آنها کرد پنجه هایش را به لبه دیوار گیراند و خود را آویزان کرد. پاهایش با زمین فاصله داشت پیش از آن که لبه دیوار را رها کند سر برگرداند و زمین زیر پایش را نگاه کرد بعد رها شد. ابتدا با دو کف پا بعد با نشیمنگاه زمین خرد و خطوت چهره از شدت درد به هم پیچید معلم که بالای سرش رسیده بود لگدی به پهلویش زد و گفت بز قاله مگه مجبوری بلی بالای دیوار بایرام با بغز گفت آقا خودتون گفتیم برمون بالا بفهمم بچا چی کار میکنن معلم بایرام را توی کلاس دنبال کرد و خودش هم رفت تو و در را محکم به هم کوبید اسماعیل رویش را برگرداند و قدم زنان از مدرسه دور شد پایین دست روی چمنها و کنار نهری که از پای های پوشیده از برف میآمد، اردکها و غازها میچریدند. مرغها و بوقلمونها لا به دنبال دانه میگشتند. قدم زنان به طرف میدان ده را افتاد. آنجا محل رفت و آمد بود. از چهار سوی ده به آنجا راه بود. بعضی ها هم قرارهایشان را توی میدان میگذاشتند. اگر گذر ماشینی هم به بنفشه میافتاد میآمد آنجا توقف می کرد تا مسافرانش سوار شوند. آرام آرام میرفت هنوز رد سوم گاو زیور روی زمین بود اما دیگر صدایش نمیامد. لابد گاو را برده بود تبیله و خودش از فرت خستگی به خواب رفته بود از میدان صدای توپ شنیده شد یک توپ واقعی چرمی و درست و حسابی تعجب کرد، تونتر رفت پسری به تنهایی با توپ بازی میکرد توپ را با پا به دیوار روبرو میزد توپ بعد از برخورد با دیوار به طرفش میآمد هر بار که پسر به توب ضربه می زد یا توب با ضرب به دیوار می خورد، صدای آن در میدان میپیچید. او خوب ضربه می زد، خوب همان را حفظ می کرد. لاغر و کشیده بود با موهای بلند که روی پیشانی عرق کردهش چسبیده بود. اسمایل ایستاد و نگاهش کرد. پسر هم او را دیده بود و برای نشان دادن مهارت خود با دقت و سرعت به توب ضربه می زد و پشت سر هم این کار با لذت را انجام میداد. در همون حال اسحاق با آفتاب از دکان در آمد و گفت بچه بیکاری تاپ تاپ میزنی؟ میاد این طرف میخوره به یه جایی. پسر توپ را گرفت زیر بغلش و نفس نفس زنان گفت اما اسحاق من این سر میدونم. نمیذارم توپ بیاد اون سر. توپ که زبون نمیفهمه. یه دفعه دیدی اومد تاپ. نه اما اصحاق خیالتون راحت باشه نمیاد. اسحاق دیگر بیشتر از این نماند و گشاد گشاد به طرف خرابه رفت. اسمایل به پسر نزدیک شد و گفت خسته نباشی خوب توپ میزنی. جایی تمرین کردی؟ پسر با آستین عرق پیشانیاش را پاک کرد و گفت نه خودم یاد گرفتم. تنهایی؟ بعضی وقت جلو مدرسه با بچه ها بازی میکنیم، اما بیشتر تنهایی یاد گرفتم. اسمایل از طرز حرف زدن او خوشش آمد و پرسید من اسمتو نمیدونم پرواز احساس کرد اشتباه شنیده است اسمتو پرسیدم پرواز عجب یعنی پرواز بله آقا پرواز دستش را دراز کرد و توپ را از او گرفت گرمای پرواز توی تن توپ بود پس چرا مدرسه نرفتی تا پنجم خوندم بابام نذاش برم شهر گفت بمون به من کمک کن درست خوب بود همیشه شاگرد اول بودم نشد برام شهر اسمایل نگاهش کرد و لبخند زد. با من بازی می پرواز با خجالت گفت. بله آقا. اسمایل عقب رفت. توپ را انداخت زمین و آهسته به طرف او زر بزد. پرواز جوابش را داد. توپ میان آندو در رفت و آمد بود. تاپ توپ. تاپ توپ. مثل یک گفتگوی لذت بخش دو طرفه توپ پل ارتباطی حسی میان آندو شده بود. لب فرو بسته بودند. حرف هایشان را از راه توپ به هم میگفتند. گفت گوی گفت گوی اسماعیل نیازمند این گفتگو بود لذت داشت در فاصله کمی گویی زمین زیر پایشان لرزید صدای بلند و مهیبی شنیده شد پرواز با عجله توپ را برداشت و گفت آقا فرار اومد اسماعیل هاج و ماند پرواز پرید روی دیوار را با دست اشاره کرد و گفت بدو این اینجا الان میرسه دوباره آن ترسناک برخواست و در پی آن صدای سم پرقدرت حیوان بزرگی شنیده شد. اسمایل دوید به طرف دیوار و دست انداختیقه آن را گرفت و خودش را کشید بالا. هنوز پاهایش آویزان بود که ضربهی به نرمه پشت ساقش خورد. احساس کرد کسی به طرفش سنگ زد. وقتی نگاه کرد گاو میشه سیاه تنومندی را دید که با شاخهای پیچیده و چشمهای سرخ میخواست روی دیوار بپرد. ماق میکشید و دهانش کف میکرد و سن بر زمین میکوبید پرسید این چرا اینجوری میکنه دیوونه است آقا حتما تنامشو پاره کرده و در رفته در همین موقع اسحاق از خراب بیرون آمد. با دیدن گاومیش به طرف دکان دوید گاومیش صدای پایش را شنید تعقیبش کرد اما اسحاق خودش را انداخت توی دکان و در آن را بست پرواز با صدای بلندی خندید گاومیش به طرفش آمد و شروع به شاخ زدن به دیوار کرد و گورید. در همان حال پایش به توپ آن را روی زمین قلتاند. با کنجکاوی نگاهش میکرد. چند بار توپ را بویید و بعد سرش را خماند و محکم به آن شاخ زد توپ مسافتی از آنجا دور شد گاومیش سری به طرفش دوید و ماق بلندی کشید و ضربه دیگری به آن زد توپ این بار از زمین بلند شد همین گاومیش را بیشتر عصبانی کرد پرواز میخندید و دست میزد. اسماعیل حیران شده بود گاو سوم بر زمین میکوبید و به توب شاخ میزد اسحاق گاهی در دکان را کمی باز میکرد و بیرون سرک میکشید و دوباره سر خود را میدزدید و داد میزد یکی بیاد این حیوان وحشی را از میدون ببره در همان حال دختر بچه 6 ساله پا برهنه ای با موهای آشفته در حالی که شاخه نازک و ترد بیلی در دستش بود پیدایش شد به طرف گاو میش دوید و با همان چوب نازکاش ضربه ای آهسته ای به ران حیوان زد و گفت ذلیل شده کجا در رفتی گاوی سرش را پایین انداخت و آرام به راه افتاد. دیگر از آن شاخشان کشیدن ها و, و ماغ بلند خبری نبود. افتاده بود جلو و به سرزنش های دختر گوش میداد و میرفت. کمی بعد هر دو از میدان خارج شدند. پرواز خندید و پرید پایین و دوید طرف توپش. آن را برداشت. آهسته چرخاند و با دقت نگاهش کرد. اسمیل آمد پیشش و پرسید: «شکمش که سوراخ نشده. پرواز خندهی بلندی کرد و گفت، نه شکمش سوراخ نشده اما خیلی ترسیده اسحاق از دکان بیرون آمد و با صدای بلند گفت اگه این گاومیش یه نفر رو نکشت من گفتم حالا میبینیم اسماعیل به اطراف نگاه کرد و پرسید این آقای مغازهدار با کی بود پرواز چشمک زد و جواب داد با اون دختر بود لا با اون فسقلی آره دیگه همون که گاومیشو برد در همان حال توپ را چند بار به زمین زد و در هوا گرفت و گفت بریم جلو مدرسه بازی بریم الان دیگه بچه ها تعطیل میشن میان با هم بازی میکنیم راه افتادند طرف مدرسه زمین روبروی مدرسه خرمنجا بود، صاف و بزرگ. تازه مشغول توپ زدن شده بودند که بچه های مدرسه هم تعطیل شدند. با شنیدن صدای توپ به طرف آنها دویدند از روی جاده عبور کردند و خودشان را به آن دو رساندند. قازها و اردکها قاتقاات کنان از آنجا دور شدند و به طرف آبگیر و برکه کوچک رفتند. بچه ها با هیجان بالا و پایین میپریدند و توپ میخواستند. اسمایل توپ را به دست گرفت و از پرواز پرسید: "چی کار کنیم؟ هر چی شما بگین." رو به بچه‌ها کرد و گفت: "خیلی خوب، خیلی خوب شلوغ نکنین. کیف و کتاباتونو ببرین اون گوشه زمین، بعد کتتون رو در بیارین و بذارین روی اونا همه." بچه ها هورا کشیدند و با سرعت به سمتی که اسمایل با انگشت نشان داده بود دویدند. و کیف و کتاب را گذاشتند و کتهایشان را هم انداختند روی آنها و به حالت مسابقه برگشتند. اشتیاق برای بازی بیقرارشان کرده بود. یک جاب نبودند. این خوشحالی در چهره پرواز هم دیده میشد. اسمایل بچه ها را دو گروه کرد برایشان دروازهبان و دفاع و حمله گذاشت. تیمها دروازه خودشان را مشخص کردند. وقتی همه آماده شدند توپ را وسط زمین پرت کرد. جیغ کشیدند و ریختند سر توپ. هرکس کس میرسید لگدی به آن میزد و روی زمین می‌غلتاند. بیشتر دوست داشتند بزنند زیر توپان را بفرستند آسمان اینطوری خیلی خوشحال میشدند. سکوت روستا را سر و صدای بچه ها شکسته بود. در آن حال سر و کله ماشین جیپی که از شهر می‌آمد توی جاده پیدا شد. ماشین آمد و نزدیک مدرسه ایستاد و چند بار بوخ زد. معلم از کلاس بیرون آمد. در کلاس را بست و به طرف ماشین رفت موقع سوار شدن چشمش به آنها افتاد اسماعیل برایش دست بلند کرد و گفت شما هم بفرمایین معلم گفت من باید برم اومدن دنبالم ماشین سر و ته کرد و راه افتاد اسماعیل چشمش به ماشین بود که فریاد بچهها بلند شد توپ گل شده بود پرواز با سرعت فرار میکرد و بچهها دنبالش بودند او به زحمت خودش را به اسماعیل رساند و گفت آقا گل، گل آقا ما زدیم، دست روی موهای سر عرق کرده او کشید، هم دست جمعی فریاد میزدند. پرواز، پرواز، پرواز، ناگهان صدای خشن مردانه ای آوار شد روی فریاد شادی پچه ها، پرواز، آهای پرواز کمرت بشگن یعنی پرواز، با شنیدن صدا همه ساکت شدند، آنکه فریاد زده بود، مردی بود با جسته ریز که برخلاف حیکلش صدایش بلند و کلوفت بود، ایستاده بود روی تله و زباله احادی بنفشه دره دستهایش تا گل گلالود بود بی غیرت مگه نمیبینی دارم دیوار طویله رو درست میکنم اون وقت اومدی بازی پرواز از اسماعیل جدا شد و چند قدم به طرف مرد برداشت و گفت دادا به خدا من خبر نداشتم نگفته بودی مگه دیشب ندیدی دارم کاهیل درست میکنم و سنگ میارم تو طویله کور بودی پرواز سرش رو پایین انداخت هیچ کس حرف نمیزد زود باش بیا بی غیرت بچه ها به هم نگاه کردند دوست نداشتن پرواز برود هم خوب بازی میکرد و همین که توپ مال او بود با رفتنش بازی می میشد برای همین زمزمه شروع شد نرو پرواز بگو برو میام بگو الان میام بگو یه گل دیگه بزنم میام یه گل دیگه بزنم میام چه غلطی کردی؟ گل بزنی؟ گل؟ بیا تو سر من گل بزن سنگ بزن کلوخ بزن بزن حالا منو مسخره میکنی هان از بالای تل خاک خاکستر و زباله سرازیر شد های گشاد توی پایش لغ میخورد پشت سرش قباری از خاک خاکستر برمیخواست به طرف بچهها دوید پرواز خود را از حلقه آنها بیرون انداخت و در طول جاده به سمت شهر شروع به دویدن کرد. پدرش هم خودش را به جاده رساند و فریادكشان سر به دنبال او گذاشت در همان موقع لندوور از پشت تپه پیچید و به سمت ده وقتی به پرواز رسید، راننده ماشین را به طرف او گرفت. پرواز ناچار پرید بالای جاده و از شیبی که پر از خار و خلنگ بود کشید بالا. لندوور به بچه ها که در میدان هاج و واج ایستاده بودند نزدیک شد. ماشین همان ماشین بود و سرخان و خلیل هم سرنشینانش بودند. آنها از کنار پدر پرواز گذشتند و پشت سر هم چند بار برایش بوخ زدند. سرخان سرش را بیرون آورد و داد زد نظر خرگوش فرار کنه بد و بگیرش و زد زیر خنده و سرش را کرد داخل ماشین آنها به طرف میدان ده رفتند توپ خسته و غمگین نزدیک دروازه افتاده بود تنها یک ضربه آرام می توانست آن را گل کند اما هیچ کدام از بچه ها حال نداشت آنها حواسشان به پرواز و پدرش بود که فریاد زنان خود را از شیب تپه بالا می کشیدند. اسمایل کمی این پاوان پا کرد برای رفتن یا نرفتن پیش پرواز و پدرش تردید داشت. می ترسید وضعیت بدتر شود. او غریبه بود و بدترین که بچه ها و پرواز دور او جمع شده بودند و بازی میکردند. با این حال تردید را کنار گذاشت و به طرف تپه دوید. نمیدانست چه کاری از دستش برمیآید اما این را میدانست که پیش پرواز و پدرش باشد بهتر است. از عرضز جاده گذشت. از دامنه تپه بالا کشید. شیب تند بود. اللف وحشی تازه سر زده بودند. کمی که رفت ایستاد و سر و سینه راست کرد و به بالا نگاه کرد. پرواز و پدرش دورتر در حال دور شدن و فریاد زدن بودند. پشت سرشان شروع به دویدن کرد. موشها جابجا خاک های نرم و مرطوب را از زیر زمین بیرون کشیده و تل کوچکی درست کرده بودند. دویدن مشکل بود. شیب تند نفسش را میگرفت. به کمک خاربوته ها و گوان های چسبیده خاک خودش را بالا که به با آن دو نزدیک شد. اول صدای پدر را شنید، بعد صدای پرواز را. آهای پرواز آهای بی مونده برگرد. میگم برگرد. میزنی میزنی بر نمیگردم. نمیزنم پرواز میشنوی نمیزنم. چرا باید تو رو بزنم؟ مگه پسرم نیستی هان؟ چرا هستم دده هستم پسرتم؟ پس حالا که پسرم برگرد. نرو پسرم، نرو پرواز نفسم بالا نمیاد، به حرف پدرت گوش کن پرواز پا کند کرد گذاشت پدر به او نزدیک شود، اما اطمینان نمی کرد معلوم بود که می ترسد. در چند قدمی هم بودند اگر کمی آهسته تر می دوید دست پدرش به او می رسید برای همین فاصله را حفظ کرده بود نمی گذاشت دست پدر به او برسد به پشت سر نگاه میکرد و رو به جلو می دوید وقتی پدر می ایستاد او هم می ایستاد وقتی پدر راه می رفت، او هم راه می رفت. وقتی پدر می دوید، او هم می دوید. گاهی با هم بلند بلند حرف میزدند، گاهی نجوا می کردند زمانی هم لب فرو میبستند و نفس نفس میزدند و حرف نمیزدند. اسماعیل هم آهسته میدوید. امید داشت آنها با هم آشتی کنند بی دخالت او دلش میخواست آنها در عالم خودشان اختلافشان را حل کنند برای همین مایل نبود به آن دو برسد. چند دقیقه بعد، پدر آنقدر خسته شد که دیگر نمیتوانست بایستد. نشست روی زمین و نفس نفس زد. چکمه های گشادش را از پا درآورد، خاکشان را تکاند. پرواز برگشت و به او نزدیک شد. خسته شدی دده؟ آره، نفسم بالا نمیاد. دیگه نمیتونم بدوم. پس استراحت کن. من همینجا هستم. جایی نمیرم. هرچی چی میکشم از دست تو میکشم پرواز از دست تو آخه مگه بچه‌ای که میری توپ بازی کنی اون توپو اگه لگت بزنی بالای سوالان هم بره یه لقمه نون هم به تو نمیدن چرا دنبال باد میری آخه پسر مگه من چقدر بازی میکنم همیشه که خونم؟ یا دنبال گوسفندم گاوَم گوساله‌ام علاقم خسته که میشم میام یه خورده با بچه ها بازی میکنم آدم گرسنه که نباید خسته بشه آدم گرسنه همیشه باید دنبال نون بده همیشه باید بوده و نگه خسته شدم دده پس چرا الان خسته شدی افتادی اونجا؟ همه خسته میشن منم خسته میشم پدر آه کشید و گفت خستگی من فرق میکنه این خستگی به خاطر دویدن نیست به خاطر اینه که تو دلمو شکستی پسرم دلمو شکستی پسری که باید اسایی دستم میشد اینطور منو از پا انداخته از نفس انداخته پرواز با شنیدن این حرف دیگر حرفی نزد نزدیکتر شد. سایش افتاده بود پیش پای پدر. به نظر می رسید می پیش پای او زانو بزند، اما جلوتر نرفت. همانطور ایستاد. پدر دستش را به طرف او دراز کرد و با صدای رنجور گفت بیا پرواز، بیا دستمو بگیر تا از جا بلند شم. پرواز از جا تکان نخورد. پدر همچنان دستش به سوی او دراز بود. بیا پسرم، بیا دستمو بگیر. دیوار طویل نصف کار مونده، شب گاو و گوسفندا تو این سرما بیرون میمونن بیا پرواز پرواز جلو رفت آنقدر که نوک انگشت هایشان به هم میرسید پدر پنجه پرتاب کرد تا موچ پرواز را بگیرد اما او سری پس کشید و پرید عقب و گفت دیدی میخوای منو بگیری بزنی دیدی پدر از جا بلند شد و به طرف او خیز برداشت و گفت بایدم تو رو بگیرم بایدم تو رو بزنم بایدم پرواز پرید دوباره فاصله گرفت پدر هم به دویدن ادامه داد باز هم بازی شروع شده بود با همون رجزخوانی ها و اجزوگلایه ها اسماعیل هم پشت سرشان می رفت خود را به پدر پرواز رساند از پشت بازوی او را گرفت و گفت مشتی شما خودتون رو خسته نکنین من میارم خدمتتون پدر پرواز بازویش را با خشونت از دست او بیرون کشید و با تحکم گفت این بی ادب باید ادب بشه بله حتما باید ادب بشه اما شما تشریف ببرین پایین من درستش میکنم. از کنار او رد شد و چند قدم بالاتر خودش را به پرواز رساند و گفت این چه کاریه که میکنی؟ پدرته؟ میزنه میدونم که میزنه. اسمایل با صدای بلند جوابش را داد تا پدر هم بشنود. یعنی چی که میزنه؟ باید حرفشو گوش کنی و دستش را به طرف پرواز دراز کرد. او با بغز گفت شما که نمیدونی دستش به من برسه تمومه. میزنه. نمیزنه. من خواهش میکنم که نزنه. به حرف کسی گوش نمیده. به خاطر من فرار نکن. پرواز به خاطر او فرار نکرد. اسمایل آمد و دست انداخت مچش را گرفت. تو رو خدا آقا ولمون کنین. و نشست روی زمین. خواست بلندش کند نشد. خود را رها کرده بود روی زمین و چنگ زده بود به خاک و علف. او را در همان حال نگه داشت. پدر کم کم نزدیک می شد، پرواز بیقراری می کرد و مثل ماهیلیز می خورد، اسمایل گفت، نمی میری که پرواز، شما که خبر ندارین، خب تا کی می خوای فرار کنی، کجا می خوای بری، بالاخره باید برگردی خونه، پرواز کم کم تسلیم شد، بلند شد ایستاد اما ناامیدانه مچ دستش را پس میکشید تا بتواند آن را از میان چنبره انگشت های اسمایل در بیاورد و فرار کند، ولی نمیتوانست آهسته ناله میکرد و پاهایش میلرزید با نگرانی به گامهای پدر چشم دوخته بود که نزدیک میشد او دستهایش را پشت کمر زده بود و میامد اجلهی نداشت میدانست که پرواز نمیتواند فرار کند با خیال راحت میامد قدم زنان در همان حال چند نفر از بچه ها هم دوان دوان رسیدند گونه هایشان سرخ شده بود نفس نفس میزدند یکیشان توپ را هم آورده بود. پرواز توپ افتاده بود اونجا آوردمش پدر به طرف او رفت و گفت بده به من پسر با تردی توپ را داد به او پدر پرواز پشت به آنها توپ را مثل یک گلوله پارچه کهنه و به درد نخور به طرف پایین پرتاب کرد توپ اول آرام می و میرفت. بعد رفته رفته شتاب گرفت از روی بوته گون و تخت سنگ ها می و با سرعت به پایین خیز بر می داشت دیگر تنها زمانی دیده می شد که از زمین بلند میشد. کمی بعد در آن حال هم دیده نشد. رفته بود ته تپه. در حالی که همه حواسشان به دور شدن توپ بود، فریاد پرواز بلند شد. پدرش دستان داخته و نرمه گوش او را گرفته بود و می کشید اسماعیل مچه پرواز را رها کرد و گفت: مشتی خواهش میکنم این دفعه ببخش، به خاطر من، به خاطر بچه ها شما کاری به این کارا نداشته باشین. پسرمه، میخوام ادبش کنم." احساس کرد اگر حرفی بزند پیش بچه ها فحش را جان کرده است. میخ کوب شد. او پرواز را مثل لاشه یک گوسفند در شیب تپه پایین می کشید. پرواز سکندری می میخورد پشت سر پدر میرفت. در آن حال سر برگردان و گلهمندانه به اسماعیل نگاه کرد. کم کم پایین برده شد. بچه ها حرف نمی زدند. اثری از شادی زمان بازی در چهره و نگاهشان نمانده بود. مقموم و نگران بودند. اسمایل به آنها نزدیک شده و پرسید همیشه همینطوره؟ بایرام با گفت همیشه میزنه پرواز بعضی شبا خونه هم نمیره. پس کجا میمونه؟ خونه ای مردم، تو تپیله انباری بالای درخت هر کجا که بشه. صدای فریاد پدر بلند شد و در پی آن های پرواز به گوش رسید. پدر افتاده بود به جانش و با تلکی که از بوته ای آلوچه ای کوهی کنده بود، او را میزد. اسماعیل طاقت نیاورد به طرفشان دوید. بچه ها هم پشت سرش سرازیر شدند. وقتی رسیدند که هر دو از نفس افتاده بودند. یکی از کتک زدن و دیگری از کتک خوردن. به فاصله کمی از هم نشسته بودند. وقتی آنها نزدیک شدند، پرواز از جا پرید و رو به بالا شروع به دویدن کرد. دیوان وار فریاد می کشید. مثل ای که از زیر چاقوی قصاب گریخته باشد، می و گاهی خم می شد و از روی زمین، سنگ و کلوخ و مشتی خاک برمیداشت و به اطراف پرتاب میکرد انگار بر سر کسی فریاد میکشید یا به روی کسی سنگ و کلوخ می میانداخت اما کسی آنجا نبود همچنان فریاد زنان و یک نفس بالا میرفت اسمایل هم پشت سرش دوید مدتی بعد به بالای تپه رسید آنجا اشتبان ها به قواره یک آدم ایستاده درست کرده بودند تا چوپان و گاوچران از دور با دیدن آن مترسک های سنگی به یاد دشتهبانها ها بیفتند و به مزاره دیگران نروند. پرواز نشست در سایه همان مترسک سنگی. اسمایل هم قدم زنان به طرف او رفت. خسته شده بود. خورشید بر کتوکولش میتابید و داغش میکرد. رق از پشت گردن پیشانیک سر زده بودند. کم کم به بالای تپه رسید. هنوز بقایای زنبقهای سفید دیده می‌شد. بالای یال باد تندی میوزید و به سرعت عرقش را خشک میکرد. آرام رفت و نزدیک پرواز روی تخت سنگی نشست. آن سوی تپه دشت مانند تشتی بزرگ زیر پایش گسترده شده بود. پوسته زمین از پشت مه رخوتناک بهاری دیده میشد. مزاره گندم، جو، عدس، یونجه به شکل سفره کنار هم پهن بودند. در دوردست ها روی خط و رأس تپهی دیگر که از مشرق به مغرب کشیده شده بود ماشینها به قواره قوتی کبریت در حال حرکت بودند. وقتی به سرباله یک کوه می رسیدند کند و گوسفندوار بالا می رفتند و باد صدایشان را که گویی ناله می کردند می آورد. اسمایل کمی بعد سرچرخاند و به نیمرخ پرواز نگاه کرد. هنوز رد به شوره اشک و دانه های عرق روی پوست گندمگون او دیده می میریخت. عرق. ساکت نشسته بود و نگاهش را دوخته بود به جاده. با چشم ماشین ها را دنبال می کرد. گاهی نور خورشید به شیشه بزرگ اتوبوس ها و مانند آینه از آن منعکس می و برق می زد. پرواز لبهایش را محکم روی هم فشرده بود و خیال حرف زدن نداشت بعد لابلای سنگ های مترسگ می پیچید و سوت می کشید دستش را روی شانه او گذاشت. چند لحظه بعد پرواز سر چرخاند و نگاهش کرد. گرد چشم های متورمش اشک حلقه زده بود منو ببخش، فکر نمیکردم اینطور بشه. پرواز با شاخه خیبه بوته که توی دستش بود شیارهای نازکی روی خاک میزد. اول چند خط موازی مثل گابهند که به ردیف زمین را شخ میزند تا کاشته شود. بعد حوصلهی سر میرفت با عصبانیت آن نظم را بر هم و آه میکشید من خواهش کردم تو رو نزنه، گفت نمیزنم، پس چرا؟ خب دیگه، تو که کار بدی نکرده بودی، پرواز بغز کرد. هی کتک، هی کتک، من که کار میکنم، من کمک میکنم، اما کتک، نتوانست ادامه بدهد. این بار با فشار بیشتری بر زمین شیار میزد، خطوطش کج و معوج و بی بودند. منتظرم لباس بپوشم برم سربازی، بر پشت سرمو نگاه کنم. اسمایل خندید و گفت به سربازیت خیلی مونده حالا کو؟ شایدم زودتر میدوهم میرم سر جاده دست بلند میکنم یکی از اون ماشینان نگه میدارن سوار میشم میرم تهرون اونجا کار میکنم برای خودم پول در میارم حالا هی دنبالم بگردن هی بگردن مگه میتونم پیدام کنن؟ اسمایل آهسته به پشت او زد و گفت چی میگی؟ اقل از کلت پریده؟ آدم که و کارشو ول نمیکنه بره شهر غریب هیچ جا ی آدم نمیشه. تو هنوز طعم دربدری و آوارهی رو نچشیدی نمیدونی. پرواز ساکت ماند به فکر رفت نگاهش رو از تکه زمین شیار خورده یه پیش رویش کند و دوخت به دشت که در مه نیمروزی قوته می ماشینها ماشین ها همچنان در حال رفته آمد بودند شیشه گاهی می درخشید. باد نالشان را در شیب تند کوه به آنجا میآورد. دشت به نظر خالی بود کسی دیده نمیشد. نه حیوانی نه انسانی جز هیاهوی باد که می تاخت و می صدای دیگری شنیده نمیشد. تخت سنگی جلوتر از آنها کنار آبکند قدیمی دیده میشد. اسماعیل دقیق نگاهش کرد و گفت نگاه کن پرواز اون سنگ چقدر شکل سیه؟ پرواز نگاه کرد و گفت نه، شکل گرگه، پوزش رو نگاه کنین اسمایل بیشتر دقت کرد و زیر لب گفت گرگ؟ پرواز شنید و پرسید از گرگ می ترسین؟ تا حالا دیدین؟ گرگ، بله دیدم پس چرا گفتین اون سنگ شکل سیه؟ یادم نبود، راست میگی، شکل گرگه پرواز به طرف او چرخید و پرسید می دونی دونه گرگ کجاست؟ نه، نمی دونم. اما من میدونم دونم. اسمایل شد. کجاست؟ پرواز از جا بلند شد و به طرف کوهی که رشته ای ابر مثل کمربند گردان پیچیده بود. نگاه کرد و گفت. اونجاست. پشت اون ابرا. تو از کجا می دونی؟ یه بار رفتم اونجا. پر از صخره و قاره. اقابم زیاد داره. پرواز می کنم. قیه می کشند. لونه گرگو پیدا کردی؟ آره پیدا کردم خیلی سخت بود نزدیک بود بیافتم بمیرم گرگو ندیدی نه گرگ ندیدم اما جای پاشونو دیدم میخوام یکی از تولهاشو بردارم بیارم بزرگش کنم خیلی دلم میخواد گرگ داشته باشم با هم بریم بگردیم مثل اینکه تو از دست دادی یا یعنی چی که گرگ داشته باشی یه گرگ با یه عقاب بزرگ بعد دست اسمایی را گرفت و گفت میای بریم لونه گورگونو نشونت بدم من می ترسم تنها برم به شب بخورم با هم بریم بشین سر جاد پرواز عجب آدمی هستی تو من یواش یواش دارم حق به پدرت میدم میخوای گرگ و عقاب داشته باشی یا بری لونه گرگ و تماشا کنی اگه قدم قد این آدم سنگی بشه میرم لونه گرگ اسمایل بلند شد و خود را تکاند و گفت حالا به جای این دیوونه بازییا بگو چیکار کنیم کجا بریم من داره حسلم سر میره پرواز با خوشحالی گفت میخوایی بریم لونه ی روباه نشونت بدم نزدیکه آره پشت همین تپه کنار درخت بید پرواز افتاد جلو حرکاتش با نشات بود با هیجان صحبت میکرد خیلی باهوشه از همه حیوونا بیشتر میفهمه غروبا که هوا نه تاریک نه روشن میاد طرف ده یواش یواش یواش یواش میاد میاد کنار ده یه دفعه میپره روی مرغ یا خروز میگیره لای دندونش ده بودو. مثل باد میره تا حالا از خونه شما هم مرق برده؟ او خیلی از خونه همه برده عجب نمیشه کاری کرد؟ مثلا تله، دام، از این چیزا گفتم که خیلی باهوشه، فکر آدمون میخونه برای گرگم تله میذارین؟ تله؟ نه، گرگا آزادن حالا دیگه باید یواش حرف بزنیم، یواش بریم هر دو ساکت موندند پرواز از جلو میرفت و اسمایل پشت سرش از کمرکش تپه میرفتند از کنار نهری که در بستر آن جاری بود کمی که جلوتر رفتند پرواز برگشت و انگشت اشارهاش را روی دماغش گذاشت همین جاهاس همین جلو سوراخ لونشو لی بوتهها درست کرده میدونی چرا برای اینکه کسی پیدا نکنه خم شده با گامهای آهسته اما بلند پیش رفت اسمایل هم همان کار را کرد جلوتر در انهنای نهر پرواز ایستاد و بیان که کمر راست کند یا برگردد با دست به اسماعیل اشاره کرد که آرام پیش بیاید او هم آهسته رفت و کنارش ایستاد کو سست. ببین اونجا لای خابیده اسماعیل گردن کشید و با هیجان به اطراف بوته نگاه کرد ندیدی ببین اونجاست آهان آهان همون حالا دیدیش اسماعیل گفت تا حالا ندیده بودم یعنی اینطور ندیده بودم عجب راحتم خوابیده جلوتر رفت پرواز گفت مواظب باش بیدار میشه مواظبم به چند قدمی روباه رسید سیر نگاهش کرد موهای بلندی داشت هنای خوش رنگ دور خود گرد شده بود مثل یک کلاف نخ رنگی کاموا سرشو گذاشته بود روی دم بلند و پر پشتش. حالا دیدی دیدی روباه روباه که میگن همینه آره، پرواز خم شد زمین و کلوخ بزرگی برداشت و خواست به طرف روباه پرتاب کند اسماعیل دستش را گرفت و نگذاشت چی کارش داری بذار بخوابه آخه الان که وقت خواب نیست باید بلنشه بره سراغ مرغ و خروسای بنفشه دره در اسماعیل خندید بیا بریم ولش کن شاید الان خواب مرغ میبینه. این بار اسماعیل جلو افتاد و پرواز را دنبال خود کشید روباه دور خود چنبره زده و با خیال راحت خوابیده بود. او نفهمید که دو نفر از اهالی بنفشه در آمدند بالای سرش ایستادند و تماشایش کردند و رفتند. بعید بود که بعدها هم بفهمد.